در دست رسد در سر زلفین تو بازم چون گود چه سرها که به چوگان تو بازم زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست در دست سر موی از آن عمر درازم پروانه راحت بده ای شم که امشب از آتش دل پیش تو چون شم گدازم آندم که به یک خنده دهم جان چو سراحی مستان تو خواهم که گذارند نمازم چون نیست نماز من آلود نمازی در میکده زن کم نشود سوز و گدازم در مسجد و میخانه خیالت اگر آید مهراب و کمانچه زد و ابروی تو سازم گر خلوت ما را شبیه از رخ به فروزی چون صبح بر افاق جهان سر به فرازم محمود بود عاقبت کار در این راه گر سر برود در سر سودای عیازم حافظ غم دل باک به که در این داو جز جام نشاید که باقت محرم رازم